قابل طيبين صالح احسنون و الناشد رحمه تعالى اعضاء اجمعين اللهم اغفر لنا واغفر لنا الشاكرين رحم الله درشتكي شد بحث درباره اجماع و جیت اجماع و عرض شد که در کتب اصول متأخر یعنی به اصطلاح ما کتب درسی ما که از ورسائل شروع میشه مسائل شیخ ایشون عنوان بحث و اجماع به خبر واحد قرار دادن ای روز توضیحاتش گذشت و ارز شد که مرموم هم همون راه رو رفتن مثلا از این جلده که دست من هر جلد 47 و حساسی و جلد دو که از مصباح رسولیشونه راجع به بحث اجماع از صفحه 156 تا 164 حدود 8 صفحه بحث برون بعد ایشون اولا ایک مقدمه فرمودن که دیروز توضیح شدش که انصر تأخیر این بحث از وجهد خبر واحد بود چون این بحث است بر برقال به وجهد خبر بعد که خواستن واردش بشن بله یه مقدمه فرمودن که لا عن اخبار عن الموضوعات الخارجیه اگر در مقام ترافق باشه مقام قضاوت هلا اشکال في اعتبار تعدد دل و اما در غیر مورد تراف و فیعه بر فعل عداله و که ایشون نوشتن اینجا اما خب معنایشون بساغت نه و کذالک از تعدد ال مشهور اینا کم چند بار کردیم که مشهور این در موضوعات خارجی بود دو تا شامل بشه مثلا این ماه این بول این آب این چی این پاکه این نجسه دون... غیر از اصول لكن خود ایشان تعدد رو قبول دارن نه ادالت رو و حقه خارجان از محل کلامنا فعلا که انما مخواستن بگن الان بحث ما در بوجیت اجماع منقول به خبر واحد این بحثش نیست که وقتی میگه اجماع ما ببینیم موضوع خارجی اتفاق خواه هست یا نه ظاهرن مرادیشون از این عبارت این بجوله این مقدمه رب که به این بحث نداره. ما اگر نقل اجماع رو میبینیم به این لحاظ که آیا قبل محصوم به این کلام به این اجماع ثابت میشی یا نه فه این کلام فی حجیت الاخبار المتعلق به احکام شرعیه دقیقه فرمودیم یعنی اگر یادم بارکتون باشه در رسائل از کدن بعد از اکتفانیم خورده که ایشون که مال خود صاحبه رسائله کشون متعلقه کلام طولانی میشن از مظموم شه حسد الله خود کتاب کشفل کنه تقریبا تقریباً باله عرقا سمیه و قطوریه شیخ سعی کردن تلخیص بکنن از مطالبی که مرموم آشه رسول الله سرین مثلا در اونجا با من کرده و نسبت و کتب و اصولی صابق تمایز داره یکیش همینه که کسی که نقل اجماع کنه دفعه نقل سبب میکنه دفعه نقل مسبب و دفعه نقل حدو نقل سبب یعنی میگه اتفاق یعنی میگه من گشتم تو برداد همه های برداد اینو گفتن خب این این شبهه میاد که این چی باشه موضوع خارجی باشه دیگه این موضوع یه نقل سبب میکنه به عنوان اصلا نقل, نقل مسبب میکنه مورد از مسبب در اینجا کلام امام قول امام وقتی میگه های برداد اینو گفتن این امام میگه فرونده این استدلال میگه نقل مسبب پس یک نقل سبب یک نقل مسبب <تصحیح> به نقل سبب مثل خبر دادنش مثل موضوعات خارجی است کسی که بگه این خاطی یا ناجیز به لحاظ نقل متعبد حکم حکم خبر واحد رو داره که مثلا گفته امام اینجور فرمودند و بناشون این شده که در نقل احکام خبر واحد حجت باشه ظاهرا مراد استاد این باشه این مطلب فئن کلام فی حجیت الاخبار یعنی میگم توضیح نذار خودشون یاد فرمودن مقرر توضیح نده ما بحثمون راجع به نقل مسبب فعلا این مقدمه که ایشون اینجا آوردن به خوب خود این مقدمه خودش محل اشکاله خود چون نقل ما در مسبب باشه در در ما به هر حال این مقدمه‌ای که ایشون فرمودن بعد احسن و احسن مافیل بله فی المقام ما ذکر هو شیخ ان انصاری و حاصل او ان اخبار عن شی تا اخباراً عنه هست و مشاهده ولا اشکال پیوریتی ها داره از در احکام مثل این که زراره بگه سمیعت و عبا بود این اخباراً هست فه این احتمال تعمد المخبرده که مدفوع به ادالتی هی و وساقتی اون قابل دفع به ادالتی و احتمال غفلات هم که اصل و اقلاعی و اقرا یکونو عنه امره اخباراً امره محسوس ما احتمال ان یکونو اخبار هون مستندن للحس اما ادا اخبران المخر وقت دوم سوم اخبار از حدث قریبه از حس چهارم اخبار از حدث من اکون حدثی ناشان من سبب کارت ملازمه بین و بین المخبر بهتامتن اندال منحول علیه ایفران این هم به اصطلاح سبب چهارمه پنجم یکونو اخبارنن هست حس معکون حسی منس... ناشن منسه و امکانات الملازمه بین و بین المخبره به غیر تام اندال منگوله الی ایشون آلا من که شوان آید بخونم چی بودیم که بخواهم اینجا بحثشو بکنم پنج قسم نوشته این قسم این قسم پنجم که ملازمه بین این حس و بین اون به اصطلاح مسبب هست این ملازمه رو فقط ناقل معتقده منخول علیه معتقد نیست مثلا سید مرتضی ناقل،, ناقل این اشماعه میگه این مقدار که علماء بقدار این مطلب قبول بکنن این کاشف از خود امام اما من این قبول ندارم خود من این ملازمه بین مقدار بعد میگن میگه واحد در اینجا بنایو اقلا برش نیست بعد میفرمون اشماعه منخول از قسم پنجمه چون ناقل اجماع من دیگه نکندم خودتون مراجعه کنیم واضح احتیاجم به این تفصیلیشان هم لعن ناغل اجماع لا یخبرو به رعی المحسوم از وسط تعبیر بهتر قول معصومشون معصوم رعی ندار لا یخبرو به قول المحسوم عن الحس امایکونو قریبا من ولا ولا ولا بله ب. بله. ان اجاع مداافی کلام شل توصی م بیا ال کشف قول ری نوشتن قول المعصوم من اتفاق علماء به اتفاققلما اصل واحد دقاعدت لط و یه غیررات ها مثل و او هنوم اجاع کلام سرل مرتظف نوع و کث ما یک قلال اجاع ال بعد ما بعد او مورد اصله معنهو لیس من موارد کل قواعد اصل مثلا دعوای اجماع کرده الا جواز الوضوء بالماء المضاف استناداً الى ان اساس البراعم متفق عليه الفقهاء و علما این را هم همون در کتاب مرحوم شیخ اسدالله طوسی ذکر کرده که شیخ تلخیص کرده این را هم ایشون آورده آیت کلمات رو خیلی جود جود آورده این در اون کتابم آمده خلاصه این بحثیشون در اینجا آوردن خلاصش در اونجا اینه که وقتی ایده از علمای ما نگاه میکنیم ادعای اجماع کردن در حقیقت اقوال علمای نگاه نگردن این از كلام ما هم آ الله درست دری چون ایشون تتبعی کردن در کلمات علمای سنریست اکثر علمایی که دنبال اجماعن مثل ابن ادریس مثل مرتضی مثل ابن زهره ایشون میگه در برخی از موارد اصلا اینا اجماع فهم در حقیقت می‌خواد میگه ما عقوال علما رو دیدیم مثلا اینم نیست یعنی این غلط ظریفه حتی عقوال علما رو چجوری ادعای اجماع میکنن مثلا شهید مظهره گفته وضو با ماء مضاف اشکال نداره چرا چون اگر شک بکنیم که درست هست نه اساس البراهه داره میشه اساس البراهه که اتفاقیه و چون پس اتفاق وضو به ماء مضاف اشکال نداره درسته یکی اساس البراهه رو اتفاقی گرفتن مورد رو مورد اساس البراهه گرفتن خب این مقدمش خرابه نه اصالت برای و علمان نه این قد مقدممش خراب نه اساطر و درایات که بعضی نه اینکه این مورد مورد اساطر و درایات نیاز باشه فقط این رو در اون کتاب شیخ انصاری اگه ذهنواشون باشه که ایشون میگه بعضی معتقدین مراد شیخ الله تصری ایشون موازنگم مثال دادن از در این کتابشون فواید بسیار زیاد زدن موازنگم مثال داره. حتی ایشون از مرحوم شیخ توسی موارد رو نقل کردن که در یک مثلا کتاب رحم یک مسئله که هم در رنگ میرم در به در رن ادعای اجماع کرده که حکم اینه همون مسئله رو به امرده اج... ادعای اجماع خلافش کرده خود شیعه توسی توی یک ماه ادعای اجماع کرده و ایفران نوشته که مردم شیدستانی رساله موجده جمع کرده این مقارده که شیعه خودش تنابض داره لقد میفهمه؟ ایشون هم مواردشو عبرده مرموم شیخ هم اشاره کرده مرموم شیخ در اینجا چون اون کتاب قطوره. از این کتابی که من دارم از این کتاب, کتاب قطوره اون کتاب قطوری خیلی زحمت کشیده ایشون این کلام رو اون آه اصلش فرمودن و مرموم هم اجمالا نهار کردن اینجا استاد مثلا اجماع جواز الوضوع به مای المزاق استنادن الان نهستات البراه م البته ایشون نوشته که این مطلب ایشون درست نیست اگه توضیح ده من هو لا قائل فیمانال فیمانع نعلم من راست امامیه راسته این اشکال محشی وارد حالا این مورد درست باشه نباشه تو مسئله مواسه و مزایده داره سیل مرحوم ابن ادریس بیشتر داره ابن ادریس میگه اجماعی است انه من اجماع انه به خبره که متکذا باشه قبول یک قاعده رو آورده و ادعای شما کرد. خب نعملو علم استناد ناقل الاجماع الالحس کما اضاکان معاصرند لیل امام البته این علمه بعد ایشون بگه اگر بدونیم اجماعش حسیه درسته الا ان از صغرا لحاله الكبرا غیره متحققت این قابل قبول نیست بل نقطعو به عدم ها بلکه قطع به عدمش داریم فیلنه نقطع به انال ان اجماعات منقوله فی کلمات الاسحاب غیر و مستندتین الالحس و نرا اننا غیلی اجمام من, من لم یدرک زمان الحضور و هم زمان و غیبه فدعا رویه فی غیر و محسون من انا هم ایوان لم یده او ار رویه بستارم که این مطلب ایشان که اگر ما بدانیم خوبه ولی که وجود نداره این وجود داره چه کلمات اصحاب ما کم داریم کلمات اصحاب ما اگر آقای مخواد نگاه کنم به این کتاب استاد موجم رو در موسمن برک شون در موسمن برک نوشتن اینشون سقر شون یکی دوارت هست که صفوان که میگه حاضام ما اج من علیه علماء از حاضام آقای فلیف همه این کتاب موسمن برک نویشتی با کنیشون عبارت ناقص نه نصف عبارت عبارت نصف دیگه شده اون عبارت در کتاب کافی هست من جاشو دادم جمع رو دادم که امراجه کنیم در کتاب کافی اینطوری حظام معش مععلله اخواابنا ان نه اعلامه توجه و خلفه کرده این اجهاجمال اینه نممال کتاب که آیا خوبی اشتبا. داریم ما مواردی که در کلمات اصحاب ما ادعای اجماع شده که اهل ضورن. داریم آن کمیکی که میگن نیست داریم چند اما غیر اصحاب ما داریم این ماله ما اما غیر اصحاب ما داریم از کردن در کتاب موطع مالک زیادم هست مجموعاً سی مورد تقریبا دو سه مطمئن دارن من کتاب دارن راجبه این مطلب دارشتن یعنی اجماعات مالک رو در موطع اصلا شده کردن یه دوره من در سه جلده تمام موارد اجماعات ایشون رو چدا کردن انصافاً بیشتر مواردش مطابقه با فتاوای ما هست. چند موردش موافق نیست چند موردش امام تقییه فرمونده اون موارد است که مالک یه ادرکت علماء ادرکت علماء. علماء به بلدی حالا یه قدوم و امی ادرکت علماء علماء حالا ادعای اجماع علمای مدینه می کنه. که قطعا تو این ادعای اجماعش باید امام وارد باشه. چون اصولا نحوه زندگی امام اون برهه جوری نبود که مسلم مثلا اون ما که الان وارد مبانی فقه فقیه اهل سنت نیستین و توجیهی هم بمانندغا اما نسبت به امام صادق در زمان مالک مالک بعد از زمان موسی جعفر (ع) فوتشه در زمان مالک قطعاً امام صادق مورد عنایت عامه مردم در مدینه بوده و امر مشکلی نیست اینکه ایشون میگه از رشت علما و مواردی هم گیریم میخوادفل هم این تذف کار میگ مواردی هم هست که مالک رأی علمای مدینه نه ما هم روایت نداریم اما فوا بر همونه این هم داریم که فتوا بر همون است که مالک از علمای مدینه نقدود کرده و خود ما رواز سریع هست ما صادر نداریم اما فتوا مشهور فتوا بر همون. داره مواردی این مواردش اگه بردرسی بشه خوبه ارز کردم تا اونجایی که من نگاه کردم فکر نمی کنم همه ای دیده باشن خیلی دیا که دیدم اما توش مواردی هم داره که مورد فتحای ما نیست و ما قبول ندارن نسبتش به امام ساده روشن نیست پس این مطلبی که در اینجا ایشون فرمودن صغرا نداره نه صغرا هم داره توی کتب ما خیلی کم زیادی. داریم ما انه حالا من ملاخلا فيل بين اصحابنا انه اضافه نکرده داریم ما خودون هم داریم تا موصونه بر بوده اما این کمه فوق العاده کمه یعنی یک مرز شده من 12 الان هست فوقش ممکنه همه رو جمع بکنیم سه 4 مرز خیلی نیست اما در کلمات سنی ها زیاده در کلمات سنی ها در نقل از امام البته یک جایی حالا من یادم نیست اونم کامپیوتر هم پیدا بکنم مرحوم استاد تو موجهم بیگ مناسبت یه حدیثی سندش مالک از امام مالکی ها بعدش می منه مالکان غیر سرده یه مالک سرده خوب این تعبیرام که روشن می‌کنه مالک دایی نداره که دروغه نردو کنه شخص مشهور در مدینه آقا امام اهل مدینه رسما از امام صادق دروغه نردو کنه البته بعضی از آیان ما هم سعی کردن، توصیدش رو هم شن، یه روایت داریم, داریم توی کشی ابن کجاست ابن حبی عمر عن مالک بن انس روایت ابن حبی عمر ابن حبی عمر او درک کرد امام صادق درک نکرد، لیکن مالک رو درک. اصولا مثل مالک رو شعرش رو عجل نمی‌گیره که یه دروغ راستان بگه به امام صادق واسه تو مدینه کسی که امام اون کشنده اساسا نمیتونست دروغ بگه یعنی یه جوری که تکویرن او کار به تعبدان نده. نمیتونست. همچین صاف صاف به علمای مدینه دروغ رسمی نسبت بده و احتیاجی به اثبات به ساقد از راه نبی هم نیست بعد بعد سمه نبع دل آزم که مرحوم آزیه باشه التزم به بحجیت الاجماع منقول در کلمات قدم خب این هم نقطه شوازه به دعوی که احتمال داره که سما از معصوم باشه بعد. بعد ایشون فرموزن دیگه آین مراجعه کنم خاصی نداره شما چون این بحث قدما و سماغ رو ما توضیح داریم البته ایشون نوشته مستند و مباست سماغ معصوم ولو بلواسته لغربه به زمان حضور بله بعد رضای اینه ایشون قبول می و وفیه انهاد ال احتمال یعنی استناد قدما فی نقل ال اجماع الالحس احتمال و جدا و خوبی خواهی احتمال میبر به حیث و یک ها دید حقا به تخیل مقال ها مثل انیاب و اقوال مثل دندون های به اصطلاح یه امر خیالیه بعدم بعد ایشون می فهمه مایه و ما حرابیهی بعده ها احتمال و کنو محومن امران یکی تطبای اجماعات قدمات شیخ توسی و سید بر چون اولی که قاعده لطف است و دومی هم که قاعده دخول دخول در تزمان نکته دوم نیکلو کانر هم و کازال کانر نشده این نه چون از اجماع از امامی طرف می‌تونید کباریت رواية و و انجام منقول من نه میشه مرسل این دو تا اشکال مردم استاد به آیه نایه مرموم آقای آزیا ما این مطلب رو یعنی اشکالا و جوابا یعنی چوزیه کلام مرموم آزیا و اشکالات و استاد رو به تقریب دیگری بحث کردیم این بهتر فرق. اینا رو مثل اخباره هست اخباره به باسته همه نه ما از کردیم کلمات و قدما مثل مرمومش این حالا اونم قدما تا چه حدیه اونم بحثی دیگری متعارد در اصطلاحشون قدما تا حدود زمانه مرموم محقق رو میگم از محقق به بعد رو متأخر میگم لیکن انصافا تا زمان محقق که نه تا زمان شکر توسی هم یک نواخ نیست چرا تا زمان محقق که قرن هفته موشه الان که ما این بواسطشون بر توضیح خواهم داد به این مقدار اجمالی کیشون ایشون فهمدن احتفاله میکنیم از خواهم کرد ما در یک زابطه کلیتر بهتر از این آقای این تغییر مثلا هست. ما عسکریم اگر قدمای ی اصحاب ما حتی مثل صدوق یا مثل آن کلهی یا ممدو مفید یا مردم شیخ توسی یا پدر صدوق یا ابن که این عنوان تقی در اسال ما حتی بعد از شیخ توسی مثل سلار مثل قاضی ابن براج دیگران ابن ادریس این بزرگانی که به عنوان فقهای اصحاب ما شناخته شدند از از زمان این طور که اگر ثابت بشه کلمات اینها یک نوع از معصوم میشه برش حسابی بازی هم. اما آیا ثابت نشد تلقیست بلکه که تبنی باشه یعنی رو قاعده مراد آیناینی هم آی آزیا و مرموم آی خویی هم همینه مرموم آزیا بخواد بگه که چون اینا قربعه داشتن تبنی نیست تلقیه یعنی تلقی از محصول مرموم آی خویی با این شواهد میخواد بگه نه تبنیه پس نقطه روشتنی شد به چه حالا اخبارها آره رو کنیشن اخبار هم پس ما اون کلمات رو برداشتیم دعوای بین این دو بزرگوار ترته مشکل اینه آیا خودمهای اصحاب ما یا این که روایت نداریم و معضاله که فرق با دادن آیا تلقی یعنی از مرسوم گرسن یا تبنی یعنی اشتحات یاد بفرم بلا با مورد به مورد فرق میکنه احسن. به نظر ما مورد مورد فرق میکنه اینی که آقای خوبی اونجا قاعده این دو راسته ایشون, ایشون فرموند شبانه داردیم که این تبنیه پس نکته در حقیقت اینه اگر ثابت بشه قدم ها تا چه زمانی خصوص قومی ها اخباری ها بغداد مکتب اول بغداد مثلا حالا مکتب دوم بغداد اون بحث دیگری. ما این رو بحث میکنیم که اگر به نفر تبنی باشه خب حکم ادایه اجماع هم بکنن چون تبنی خودشون اشاره کردن اون عبارت مشهور گفت هم رجال و نه رجال اما اگر تلقی باشه اینجا خب انصافاً میشه قبول کرد لیکن مرز این دوتا خیلی مشکله ما هم الان یک ظابطه کلی بخواییم به شما بگیم بحث و اصولی نمیتونیم الان ارائه بدیم که آیا کجا تبنیست کجا تلقیست به طور کلی به طور کلی اونی که ما بشترسیدیم مثلا فیلم هر رضا تلقی نیست تلقیه به طور کلی صدوق پدر تلقیه صدوق خود مرحوم صدوق تلقیه به طور کلی حالا کار در مکتب اول بغداد میشه فخر رضا اگه روز مکتب اول بغداد باشه کاملا واضحه که تلقیه این هست انصافا به طور کلی نمیخوام میگم دائما به طور کلی یعنی به طور عام نه کلی کلی و نه منفرد به طور عام این طوره اما خب در موارد ممکنه تفاوتی باشه این به طور عام به طور عام اینطوریه اما از زمان مثل شیخ مفید مثلا اگه مرحوم کلینی ادای در این مطلبی ادای مثلا اجماع بکنه یا مطلبی رو بکنه قاعدتا مرحوم کلیه مبناش تلقیه مرحوم پستادو رو پدر تلقیه مرحوم مفید مرحوم شیخ به اصطلاح حتی تا حدی میشه که شیخ مفید هم تلقیه تا حد زیادی میشه که اما از شیخ توسی بعد تبنی واضح تره سید و مرت سید و در کتاب فرقبایی شاسته یک حدی تلقی از بغداد باشه تلقی هستن این که از معصوم اما مثلا فقور رضا خیلی واضح تلقی از معصومه لکن اشکال بعدی استاد وارد میشه و اون این که این تلقی بر فرزم ثابت شد میشه خبر موسط یعنی مشکلش اینه اثبات میتونیم بکنیم که اینها حتما در مقام روایتی بوده خود من خود من ده. اگر صدوق بیاره مگر خیلی نادجه که بگه قال عبیفی رسالتی به استثنائیم موارد اگر صدوق چیزی برد قطع یقینی دارم روایت نه اینکه آم لیکن انصاف قضیه حجیت روایت محل اشکال این اشکال دوبار ماهار وجود روایت یک بحثه حجیت بحث, بحث دومه اینه که قطعا صدوق نه رو میکنه همین اخیران در بحث قناه اگر یادون باشه صدو نوشه رو بیان نه عجر المغنیه و مغنیه سخت گفتون این اصلا ما نداریم اصلا تو روایاتو ما در کتب ما کلا حتی احل سنت بعضها تو امالی یکی از امالی اهل زیدیه ها از امام صادق نمک کرده از جبر محمد قال عجر المغنیه سخت عجر المغنیه سخت یعنی واقعا خود منم تجربی به اصلا این کتابه عملی احمد بن احمد بن زید در اونجا اونم از امام صادق آورده خیلی عجیبه یه کتابی که اصلا به ذهن ما نمی در کتب زیدیه اونم از امام صادق همین مهمون آمده بود یعنی واقعا کار صادوکه هنوزم داریم این صدوق داره مرسل نمی دونم هم صدور هست اما ما متنی پیدا بشه بعدا توی این یه چیزی صدور صدوق رو ما اینقدر دقیق میدونیم این کلوشنی مطلق ها در لفیه نهره نداریم نه صنی داره نه شیعه داره لیکن میدونیم که صدوق اینقدر در این نهرها دقیقه اینقدر فوق العاده، که انصافا بعدها هم امید داریم پیدا بشین اما برسر حجیت گیر داره دومش حجیت داره. علم ما برسر از اون روایت مغنی و مغرنیه تزکیه کرده حجیت نداره مشکل مشکل حجیت داره یعنی اشکال دومه های کوی که خبر مرسل گرفتن مرسلن نبا چون مستدل بشه یک خبر مستند کار رو چون ما الان علم نداریم چون ما این رو یقین داریم این یک یقین دوم صدوق روایاتی رو که در فقه آورده معتبر میدونه حجت میدونه در حجیت مبانیش با ما فرق میکنه حجت در حتی صحیح من عرض کردم حدیث در کتاب خصال در کتاب الاله شرایط داره یه هالو حدیثو صحیح تعبیر می‌کنن صحیح با اینکه سندش ضعیفه به ابوهوررم منتهی میشه ام رسول الله همو حدیث که رو جو صحیح اصلا انز... لكن مرادش از صحیح یعنی من هيث المجموع مضمونش قبول قابل قبوله مثلا اگر بخون نگاه کنه در بحث صبح در اینکه چرا انسان سه روز مستحب روزو میگیره 13ام 14ام چند سوالام که مثلا گناه که از صورت سیاه شد، سیزان و سیزان به یک سنسش سفید شود فرضام دو سال ایام الویزو رو. این رو روایت رو اونجا در احمد گفته یه اده حدیث هست این مضمونش لطیفه که اگر انسان روزه گرفت مثلا اگر یک گناهی کرده در روزه سه روز بگیره رو این معناش اینه که سه روز سود میشه آثار اون گناه بره معناش اگر یه روز بگیره یه آثار گناه خب لطیبه مصمونش لطیبه مشکل نداره حالا ابو حره علم نبی نرکرده پس یه مبنای صدوق داره ما مشکل اون با این که اون مبنا رو نداریم این که صدوق روایت نرده میکنه این که قفلی پیش من این که قفلی که خلافشه بله من جایی دیدم که اگر صدوق یه کمی گیرداره میگه قال عدیفی رسالت دیگه اله. احتمال میدم اونجه ه جمع باشه اینو تکلیف با تبنی باشه نمیخواسته از اون طرف رد بکنه از اون طرف هم چون روایت به اون تعبیر نبوده نسبه الهی علیها هم با اون بر... بر... تحقیقاتی که ما راجع به صدوق و کتاب ایشونه کتاب‌های واقعا واقعاً در جهت تقید و تعبد به نصوص فوق العاده است یعنی چیز وحشتناکیه من نگیدم در اصحاب دومی برای صدوق رضوان خیلی فوق العاده یعنی واقعاً نه من این شبان چرا و تعبدن میگه نه ای اصحاب ما. البته ما تمام مبانیشون رو قبول نمی‌کنیم. یه مقدار مشکلات مبانی ایشون داره که الان نمی‌خوام متعرض بشم. قضایان اجمالاً صدوق این طوره. این قبول کرد. تلقی اما به طور کلی باز هم مشکل داریم مرز تلقی و تبنی در کلمات البته این مطلب رو اصطلاحاً من گذاشتم اما این در دنیای اسلامی تو نبوده که ماشی ما یا عاصره این معنی که مرحوم آزیا میگه این رو هم حتی مرحوم علامه محمدانی استرابادی داره در این بحث قواعد مدنی میگه اجماع حجر نیست مگر قدما قدم بگن اون چی حالا ایشون گفته قدما بگن مرحوم آی بروچدی هو اصول متلفات باشه قدما بنده نمیگن تلقی و تملی اصطلاحات مختلفیه آن آزیا گفته اخبارشون انحسه انحس نیست ان حس ان نیست آقای خویم میگه نه حس باشه اولین قدما عرض عریضی داره این مقدار نیست مرموم آزیو اگر بگه اخبار صدوق از رباسه درسته اما شیخ توصی نه شیخ توسی به قراره اعتماد کرده که در بوده که تلقیه بشه نه روشن نیست آل هم اشکال به شیخ توصی میکنن این اشکالیشون برد چون قدما در یک اصطلاح واحد روشنی نکرده. ما نسبت به خودهای خودمون کاملا میشه حکم میکنید مبانی فکریشون حدیث قبول حدیث رد حدیث قواعد اصولی غیره اینها واضحه اینطور که چشون رند بگیم اخبار عن هست اخبار عن هست نه اینطور طور نیست این به و اما ریشه این کلام را از کردن در قرن دوم ابو حنیفه یکی از اشکالاتی که در ابو حنیفه وارد چون سنی ها بود که صحابه هرچی چی میگن قابل قبوله اصحاب کانو چون به ای مقصده ابو حنیفه مخالفت میکنه. توی یک روایت ما هم داریم که لعن الله ابو حنیفه کانی اقول قال علی اون کده و انعبول راست این هست این حرف ابو حنیفه هست اختصاص لکن به علی ابن علی طالب نداریم قال عمر کده و انعبول قال عبول برکی فرم برای ابو حنیفه ابو حنیفه این حرفه میزده اگر صحابه مکلبی و از رسول الله نقل کرده، هن. اینا سقه قبول. اگر اجتهاد خودشون و رأی شخصی خودشون هم نحن رجال لان احراج، بهتوری که دلیل نمیکنی. بعضی این صحابه چه قاعده ای رو به کار برده، اون قاعده مورد قبول ما باشه قبول میتونم، نباشه نمی کن. این اصطلاحی که من بردم، این رو در تاریخ، در روایت ما هم آمده که لعنه الله ابو حنیفه این کارو که درسته این ثابته. این در شرح ابو حنیفه ثابته، لکن اختصاص به امیرالمؤمنین نداره. اگر نام علی ابن برده شده چون در کوفه فقه کوفه در اصطلاح اهل سنت فقه عبدالله مسعود و علی ابن عبی طالبه چون میگن دو تا از صحابی بزرگ رفتن به کوفه و کوفه هم قراعه و هم تپک و هم فریاد گرفتن دست این دو بزرگوار یکی عبدال، اول عبدالله مسعود و بردم علی ابن عبی طالب در اگر در روات ما اسم امیر برده شده روی این جهته حساسیتی که در فکر کوفه و امیر المؤمنین بود و ابو حنیفه بگفت بله اگر علی ابن نوی از رسول الله نهارو بکنه ما تعبوزا قبول مید. اگر علی ابن نوی صالب قوائز فرمودن نه من صالب قوائز حساب میکنم هم رجال و نه همین رجال حالا این که این تا اینجا راجع به اجماع منحول که مرموم استاد فرنده. بقیه کلام از طرف 166 بقیه الکلام مدرک حجیت الاجماع المحصل الذي هو احد العدلت الاروه. خیلی عجیب و خب سهید ناشوال اولید بحث اولی فرودید بعد اجماع من فقط یقال این مدرک حجیت الاجماع ملازمه عقلیه بین اجماع و قول معصوم و تقریبا به وشهین یکی رجع اول قائده لوت که بعد ایشون اشکال میکنن به قائده لوت اولا و ثانیا و ثالثا بله. که حالا بیه، بیه ما بخونیم آقایم خودشو مراجعه کنن هم وجه دوم اتفاق جمعی افقاهای از تل زمال و قول امام از من قول فقیه واحد یه سلوزن البته این یک امر عرفی هست لکن آیا این امر عرفی به جایی در حد و اون محله مثلا الان مطالبی هست در تفکرات مارکسیستی مثلا با نسا که خود مارکس در کتاباش نهی اما بزرگان مارکسیست برها گفتن این هست این متعارمه میگن درسته هست که مثلا در اصطلاح اقتصاد مرحله انحصار. در اقتصاد مرحله انحصار که شرکت های بزرگ اتراس هایی برمولی پیدا میشن برای انحصار میگن تو کلمات مارکس نیامره تو خود رسمال کاپیتال نیامره اما مثلا فصل کردن در کتاب خودش که اصلا به همین عنوان نوشته و بعضا در تفکرات مارکسیستی اصلا مرحله انحصار سرمایه‌داری قبل از انحصار بادیه خب این در تفکرات مارکسیست ها وارد شده ولی در خود کتاب اصلی مارکس البته گفته شده مارکس یه عبارتی داره در کاپیتال که اشاره به این مطلب داره حالا من وارد بحث مارکسیستی میمخوام بشم بنازم اینه که این یک امر اورجی حساب میشه دیگه صافن این را حدی که مثلا اگر بزرگان تفکر یک مکتبی یک چیزی رو گفتن ولو معصص مکتب نگفته باشه با اون اصفت میزن دیگه این متعارفه این خیلی امر عجیب و نیست این یک امر متعارف و عرفی این همین که در جای کویه و بردن یه اتفاق جمعی اتفاقه های هستن در اون قول الامام اتفاق بزرگانی یک مکتب فکری ولی اون صاحب مکتب اون مطلب نیورده باشه وقتی بزرگانی که در اون مکتب بودن اون اندیشه بگن میفهمیم که این اندیشه با صاحب مکتب یکیه خب هم میگه مثل این اسم بردن بگه خب نه اینجا فوقهای بزرگ ما باشه بعد دقیق فرمودی بعد ایشون نوشته که از یک فقیه یک فقیه که می بیشتر میشه تا میره بالا حالا این رو در کتاب مثل مرحوم شیف و کتابی که کلمات مثل مرحوم نایمی و دیگران حالا من نصبر کنیشون تا مراجع مراجعه نگه این رو اصطلاحاً بشینگرن قاعده هر اصطلاحشون این شده یعنی گفتن ملازمه بین اجماع ما هستن و کلام امام یا قاعده لطف که اجماع شیف توسیست یا تزمونه یا دخول تزمون تزمون بهتره که این اتفاق علما متزمن و قول امامه که این مبنای سه دو و یا حد حقص، حق سو نسبت دادن به متاخرین بیرکتر این متاخری کسانی هستند که نصف صاحب قوانین اونها که بعد از دعوی معروف بین اصولی ها و اخباری ها که اخباری ها بین اجماع حمله کرده اونا از رای حق حتی خودی وشه سانی قرار دادن مشهور در تقاریر کلمات سالسه و برای تعبیر به حرف می کنه پس مبنای حجت اجماع یا لثره یا تضمن یا حرفه بعضی دیگه ایشان بله ایشون یک جوابی دادن بعض وقت یوان بالملازمه تل عادیه حالا اگر عقلی نیست ملازمه عادی عادیس بین اجماع و قول معصوم به دعوا ان العاده تحکم به ان اتفاق المرءسین علی امر لا ينفک رئیس این همینه ملازمه مواردش عقلی نیست حثه هر حد زنده میشه ایشون و فی تحلیل ک نمایاتین فی مالکان المرصوصه ملازمین له حضور رئیسه. بله وقت یقال فی وجه حجیت اجماع از ایشون تضمنی نیوردن کاشفن وجود دلیل معتبر و فی اجماع ون ان الاجماع ممکن کان کاشف وجود اصل دلیل کشف ان چون خطوای بغیر دلیل که اما الا این اینکه این چی گفت این دلیل حجته این رو نمیشه انجام دام از در اصناع کلام مرحوم استاد استال بله این میشه گاهی اوقات انسان نه فقط از اتفاق علماء ممکن از اتفاق سه چهار تا عالمی اینا فوق دقیق بودن فوق العاده متلق بودن فوق العاده احتیاط میکردن فوق العاده احاته داشتن از قول اونها هم حتی میشه انسان قول امام رو کشت بکن این ایشونی بحثی در مجرد نه فقط شاهد نابعذ ولی آزم ه من اتفاق ثلاثه منر علما در علماء نجف بود که به عزیزون اگه سه نفر از علمای یک فتوا بدن ما دیگه قرض بدیم که قول ائمه یکیش مرحوم شیخ انصاری مرحوم میزه شیرازی بزرگ یکی هم میزای شیرازی دوم مرحوم امیزا محمدی شیرازی ل اعتقادی به شدت ورع و دقت نظرش این هم هر راست راستی مثلا اون به اون استاد که این وجود کلماتی بود که مرحوم استاد خوندیم دیگه تمام کلماتیشون رو البته کلام سیرمزدات این بحث اجماع محصل هم چون صاد صاغنه پس بنابر این یک اجماع منقول به خبر واحد بود یک اجماع محصل بود اجماع منقول به خبر واحد نکتهش این بود که عدل حجت خبر هم شامل میشه چون اخبار از قول معصومه فراهم میکنه اصطلاحا اینطور شد خبر از قول معصوم حجته چه تفصیلی باشه اصلا بگه سمعه تو عبا عبدالله یعنی چه اجمالی باشه آنه بعدی ها اینطوری تقریبش کردن اونم یه نوع خبر از قول محسوم چون وقتی میگه علمای ما اینطور گفتن اجماع علمای هست یعنی قال المحسوم لیکن قال المحسوم اجمالن اجماع ما هم نکاتش گفته شد فردا انشالله تعالی وارد افرده های این نقدر مسئله صحیح هست نه؟